افسان از گروه جوان و فرهنگ به خدا خالق افسانه‌های زندگی. سلام و درود بر شما همراهان برامیه هزار افسان. افسانه‌ها بازتاب و انتقال تهدیدی های مردمان هر سرزمینن. در افسانه‌ها که بخشی از ادبیات شفاهی هر کشورن، روابط انسان ها و روش برخورد اونها با همدیگه تجزیه و تحلیل میشه و در واقع افسانهها تفسیرگر احساسات عمیق و ژرف آدمیان. این بار افسانی رو از مردمان سرزمین کره براتون نقل میکنم به نام شاهزاده خانم دماغ دراز برگرفته از کتاب جزیره عروس با ترجمه از رزوان دسولی در روزگاران قدیم در سرزمین کره پیرزن بیوی با سه فرزندش زندگی میکرد اونا زندگی چندان خوبی نداشتند و به همین دلیل هم سخت کار میکردن تا زندگی راحتی پیدا کنند. روزی از روزها پیرزن فرزندانش رو صدا زد تا با اونا صحبت کنه پیرزن آهی کشید و گفت آ فرزندان من عمر من به آخر رسید اما قمگین نباشین من روزگار زیادی را رو پشتسر گذاشتم و از زندگیم هم راضی بود قبل از مرگم میخوام گنج خانوادگیمون را به شما نشون بدم فرزندان پیر با خوشحالی و تعجب به هم نگاه کردند پیرزن به سختی از جاش بلند شد و رفت و صندوخچه کوچکی رو آورد و از توی اون بخچه ای رو بیرون آورد و با صدای آروم طوری که انگار نمیخواست کسی صدای اونو بشنوه گفت این گنج چندین نسلی که توی خونواده ما دست به دست گشته این اونقدر با ارزشی که شما نباید در به کسی چیزی بگید یا اونا رو به کسی نشون بدید و بعد تحکید کنان به فرزندانش گفت: حرفای منو خوب خوب به خاطر بسپرید خیلی خوب یادتون نره پیرزن بعد از این حرف تیله شیشه بزرگی رو بیرون آورد و روی زمین گذاشت. بعد از تیله فلوتی که از جنس نی بود رو کنار اون گذاشته و بعد کت کهنه و مندرسی رو هم کنار تیله و فلوت گذاشته فرزندان پیرزن با تعجب و شگفتی به تیله و فلوت و کت کهنه نگاهی انداختن پسر بزرگتر گفت اما ما در اینا که چیزای باارزشی نیستن نیستند پسر دوم گفت بابا اینا ای فقط یه مشت خرط و پرتن همین و پسر کوچکتر پوسخن زنان گفت مادر تو به اینا میگی گنج خونوادگی؟ مادر آروم لبخندی زد و گفت باش اگه خوب دقت کنین میبینین که اینا واقعا واقعا گنجن و بعد تیله رو توی دستش گرفت و آروم اونو روی زمین قل داد توی چشم به هم زدن در مقابل چشم‌های حیرت زده پسرها ردیفی از سکههای طلا روی زمین بهجا موند پسر بزرگتر با هیجان گفت مادر مادر این این فوقالعاده است پسر دوم با خوشحالی گفت ما ما دیگه ثروتمند شدیم ثروتمند و پسر کوچیکتر توی چشای مادر خیره شده و پرسید او, مادر این تیله ماله چه کسیه مادر گفت عجله نکن اجله نکن این طیله متعلق به برادر بزرگ شماست اما پسر بزرگتر کلام مادرش رو قطع کرد و پرسید اما چی مادر بگو مادر گفت اما یادت باشه که از این تیله فقط در موقع نیاز استفاده کنی و برای سر و تندوزی به کار نبری پسرم پسر بزرگتر که سخت به حیجان اومده بود با خوشحالی گفت چشم مادرچان چشم چشم هرچی بگی به اون عمل میکنم چشم مادر ادامه داد فلوت هم متعلق به برادر وسطی شماست پسر وسطی پرسید مادرشون بگو بگو این فلوت چیکار کار میکنه زود باش طاقت ندارم مادر بگو مادر خندید و گفت <تصفيق> سکر داشته باش پسرم. این فلوت خاصیتش اینی که اگه در اون بدمی دسته این سرباز در مقابل تو ظاهر میشن و به تمام دستورات تو عمل میکنه مادر به فرزند کوچیکش که آروم به اون نگاه میکرد گفت خوب این کتم مال تو؟ هر وقت این کت رو بپوشی میتونی از چشم دیگرون قیب بشی مادر کت کوهنه و مندرس رو به دست پسر کوچیکش داد و خطاب به همه پسراش گفت خب از این گنجا خوب مراقبت کنید و اونا رو به فرزندانتون بدین تا اونا هم این گنج های با رو به فرزندانشون بدن و بعد تکید ادامه داد یادتون باشه که هیچ کدوم از این گنج ها رو نباید کسی ببینه اگر نه به هر طریقی شده اونها رو از شنگ شما در میارن پسرا قول دادن که از گنج های خانوادگیشون مراقبت کنن چیزی نگذش که مادرشون از دنیا ره بعد از مرگ مادر بین دو پسر بزرگتر بر سر اینکه گنج کی بهتره دعوا شد. و هرچه برادر کوچکتر به اونها گوشزد میکرد که برادرا نصیحت مادرمون رو فراموش نکنیم. کسی نباید از وجود گنجها ها باخبر بشه. اما فایده ای نداشت که نداشت. و همین موضوع باعث شد تا خبر گنج استثنایی برادرها به گوش شاهزاده خانوم خودخواهی که حاکم سرزمینشون بود برسه شاهزاده خانوم فورا پیغام داد که برادر بزرگتر و همراه تیلی جادوییش به قصر بیاد پسر بزرگتر با افتخار دعوت شاهزاده خانوم رو پذیرفت و تیله رو برداشت و به قصر رفت شاهزاده خانم به گرمی از پسر بزرگتر استقبال کرد و دستور داد نوازنده ها اونو سرگرم کنن و آشپزهای قصر بهترین این غذاها رو برای پذیرایی از پسر بزرگتر تهیه کنن و خلاصه شاهزاده خانم با رفتارهای مهربون خودش و پذیرایی مفصلش تونست پسر بزرگتر رو فریب بده تا جایی که پسر بزرگتر راضی شد تیله با ارزشش رو به شاهزاده خانم نشون بده. شاهزاده خانم با مهربونی از پسر بزرگتر پرسید خوب بگو این تیله چیکار میکنه. پسر بزرگتر بدون اینکه جوابی به شاهزاده خانم بده فورا تیله رو روی کف اتاق دلتوند و ردیفی از سکه های بر تلا نمایان شد. شاهزاده خانم پاتجو گفت: آه، چه جالب! اگه میدی یه بارم من رو امتحان کنم. پسر بزرگتر که از اطاعت کردن از شاهزاده خانم احساس خرسندی کرد، تیلر رو به دست شاهزاده خانم داد و شاهزاده خانم هم فوراً تیلر رو توی دستش خواهیم کرد و فریاد زد: جلاد! جلاد! بیا و این پسر رو به سیاه چال ببر و زندانی کن جلاد چند لحظه بعد پسر بزرگتر توی زندان سیاه و تاریک شاه ساد خانم بود. روز بعد قاصل های خانم برای برادر وسطی پیغام بردن که بله شاهزاده خانم از اون دعوت کرده تا به قصر بره پسر وسطی هم با خوشحالی دعوت اونو پذیرفت و فلوتش رو توی جیب کتش گذاشت و به طرف قصر برافتاد پسر وسطی هم مثل برادر بزرگترش با استقبال گرم شاهزاده خانم روبرو شد موسیقی و غذای عالی و مفصل هم این دعوت رو سد چندان دلپذیرتر کرده بود. اما مهمتر از همه توجهی بود که شاهزاده خانم به پسر وسطی داشت و بالاخره وقتی پسر وسطی بیشتر از انداز غذا خورد و خوابالود شد رو کرد به شاهزاده خانم و گفت بانوی من من فلوتی دارم که دلنشین ترین موسیقی رو داره اون حتی از نوازندگان شما بهتر و زیباتر ساز میزنه شاهزاده خانم با التماس گفت خواهش میکنم اونو به من نشون بده من آشق فلوت و نواختن اونم خواهش میکنم فلوتت رو به من نشون بده پسر وسطی خندید و فورا فلوس رو از جیب لباسش بیرون آورد اما قبل از اینکه فلوت بزنه شاهزاده خانم با هیجان گفت وای وای چه قشنگه قشنگی پسر اول من اونو امتحان کنم پسر نادون هم بدون اینکه به عاقبت کار فکر کنه خوشحال شد که تونسته توجه شاهزاده خانم رو به خودش جلب کنه برای همین هم بلا بلافاصله فلوت رو به دست شاهزاده خانم داد شاهزاده خانم در یک آن فلوت رو روی لبهاش گذاشت و توی اون دمید و توی چشم هم زدن دسته ای از سربازها در مقابل اون ظاهر شدن و همه منتظر اجرای فرمان شاهزاد خانم شده شاهزاد خانم خنده ای کرد و گفت زود زود زود زود این ابله رو به سیاچال ببرین و اونو حبزش کنید چند روزی از این ماجرا یعنی زندونی شدن تو برادر گذشت برادر کوچکتر نگران دو تا برادرش شد تا جایی که تصمیم گرفت خودش شخصا به قصر شاهزاده خانوم بره و سرگوش یاب بده و ببینه که چه اتفاقی برای برادرش افتاده اون از طمع و مکر شاهزاده خانوم داستان زیادی شنیده بود و حد زد که شاهزاده خانوم باید گنج خونوادگی رو از چنگ برادراش در و باشه برای این برادر کوچکتر قبل از حرکت به طرف قصر کت جادوییش رو بتنگ کرد و از نظرها غیب شد به همین دلیل هم راحتی تونست وارد قصر بشه اون همینطور که توی قصر به دنبال برادراش میگشت به اتاق شاهزاده خانم رسید و دید که شاهزاده خانم در حال بازی با تیله جادوی بود و سکه های رو که روی هم چیده بود میشمرد. پسر که سخت عصبانی شده بود یه دفعه به میزی که در کنارش بود خورد و اونو تکون داد شاهزاده خانم وحشت زده از جا پرید و تیله و فلوت رو زیر فرشی که روی اون نشسته بود پنهون کرد و با های بلند فریاد زد آهای نگهبان ها نگهبان زود بیاین یک خرید اینجاست فورا تمام اتاق رو بگردیم یکی توی اتاقه زود باشین نگهبان ها فورا تمام اتاق رو گشتن اما کسی رو پیدا نکردن شاهزاده خانم با خودش گفت لابوت لابوت باد بوده میز رو تکون داده بله حتما باد بوده و دوباره مشغول بازی با تیله جادویی شد و سکار رو روی هم چید. این بار پسر تلاش کرد تا فلوت رو از زیر فرش برداره اما با وجودی که خیلی دقت کرد دستش به پای شاهزاده خانم خورد و شاهزاده خانم فریاد زد نگاه بنا! نگاه بنا! یه نفر اینجاست من مطمئنم یه نفر اینجاست نگاه بنا! به محض ورود نیجا پون‌هو به داخل اتاق پسر که هنوز نامری بود آروم از اتاق بیرون اومد و به باغ قصر رفت و زیر درخت سیبی که میوه‌های سرخ و زرد داشت نشانس پسر که حسابی گرسنه شده بود دستش رو دراز کرد و سیب سرخ بزرگی رو از درخت چید و گاز زد اما به محض اینکه سیب رو خورد اتفاقی عجیب براش افتاد بله پسر با خوردن سیب سرخ دماغش شروع کرد به روشن کردن و هر لحظه بزرگ و بزرگتر شد تا جایی که دماغش به شکمش رسید پسر وحشت زده و نگران گفت ای خدای مهربون حالا با این دباغ بزرگ چیکار کار کنم ها خدا شد خودت خودت یه راهی پیش پام بذار من باید برادرام رو نجات بدم ولی با این دباغ گنده که نمیتونم خدایا کمکم کن پسر همونطور که به درگاه خدا آه و ناله میکرد ناخداگاه دستش رو دراز کرد و سیبی زرد از درخ چید و گاز زد بلافاصله دماغ شروع به کوچیک و کچیک تر شدن کرد تا دوباره به اندازه قبلیش رسید پسر با خوشحالی گفت حالا فهمیدم چطور درس خوبی به شاهزاده خانم تمکار بدم خدایا شکرت درسی که هیچ وقت فراموش نکنه بسر چند تا سیب سرخ درشت رو از درخت چید و توی سبدی گذاشته. بعد کت جادویی خودش رو از تنش بیرون آورد تا دیده بشه بعد هم سیبا رو به زیر پنجره شاهزاده خانوم برد و فریاد زد آهای سیب سیب دارم سیبای آبدار و شیرین سیب دارم سیبای سرخ و آبدار بیاین بخرین به به چه سیبایی چیزی نگذش که شهزاد خانم تمکار سرش رو از پنجره بیرون آورد و هوس کرد چند تا سیبا آبدار بخوره برای همین هم مستخدمش رو فرستاد تا تمام سیبا رو از پسر بخره پسر تمام سیبا رو به مستخدم شهزاد خانم فروخته و به سرعت کسش رو پوشید و آروم به دنبال مستخدم شهزاد خانم وارد اتاق شاهزاده خانم شد شهزاد خانم با دیدن سیب های سرخ و آبدار با خوشحالی گفت اجب سیب سرخی حتما خیلی شیرین و آبدارن و دست راست کرد و یه سیب بزرگ رو برداشت و گاز زد به محض گاز زدن سیب دماغ شاهزاده خانم شروع کرد به بزرگ شدن. بزرگ و بزرگتر. فریاد شاهزاده خانم توی قصر پیچید. خدای من، خدای من، خدای من، دماغم. دماغم. چی برای سر دماغ بیچاره اومده؟ وای،, وای، وای، وای. با فریاد شاهزاده خانم همه ندیمه ها و ها به اتاقش اومدند و هیچ کس نتونست جلوی خندش رو بگیره. بله دماغ شاهزاده خانم به درازی یه دست جارو شده بود شاهزاده خانم هم با وحشت از این طرف به اون طرف میدوهی در این میان پسر کچی که نامری بود آروم کیده و فلوت جادویی رو از زیر فرش برداشت و به سرعت فرار کرد وقتی پاش به حیات رست رسید بلافاصله شروع به نواختن فلوت کرد و در یه چشم هم زدن گروهی سرباز حاضر شدن و پسر به اونها دستور داد تا تمام قصد رو بگردن چیزی نگذشت که سربازها دو تا برادرش رو که در سیاچال زندانی بودن پیدا کردند و اونا رو نزد برادر کوچکتر آورده شاهزاده خانم تمن... کار هم تا آخر عمر مجبور شد با اون دماغ درازش که به اندازه یه دسته جارو بود زندگی کنه و روزهای تلخی رو بگذرنه دماغی که تا آخر عمر به یادش می آور که تمکاری چه بهای سنگینی می افثانه ابرتامیز شاهزاده دماغ دراز رو از مردمان سرزمینی کره براتون نخ کردم که از کتاب جزیره عروس با ترجمه از رزوان دسفولی اقتباس شده بود افسانه ها سرشار از آرزو، تلاش و مبارزه برای پربار کردن زندگی شرافتمندانه همراه با آسایشن در افسانه ها باورها و اعتقادات ساده و صادقانه و آمیانه بیان میشن و در اونها از پیچیدگی و رمز و راز خبری نیست. هرچه هست سادگی، روانی کلام و پند و ابرت. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور ویراستار سویلا کریمی اجرا مهران دوستی صدابردار فوزیه میر دریکفند خیلی کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانی دیگر بدرود